ولی به سبب کارهایی که از پیش کرده اند، هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به حال ستمگران داناست.